نا مووی سریال تقدیم میکنند. حبیت مدیر دوبله اش کانوی صادقی، مترجم امید غورشی، دوبله شده در استودیو نماهانگ. فرادوی آزیز. یه زمانی ازم پرسیدی که آیا همه چیز راجع به ماجراهایی که داشتم بهت گفتم یا نه؟ خب اگه بخوام صادق باشم دروغی بهت نگفتم ولی همه ماجرا رو هم برا تعریف نکردم من دیگه پیر شدم فرادوه دیگه اون حابیته سابق نیستم فکر میکنم دیگه زمانش رسیده که همه چیزا بدونیم این ماجرا از مدت ها پیش شروع شد از سرزمینی در شرق دور که مشابهشو هیچ جای دنیا نمیشه بیدم. شهری بود به اسم دیل یه مرکز تجاری خیلی مشهور پر از اجناس قیمتی و لباسهای زیبا یه شهر امن و پر رونق این شهر در مقابل دروازه های یکی از بزرگترین فرمان رواهای سرزمین مرکزی قرار داشت اربار دژ نظامی ترار فرمانروای کوهستان قدرتمند ترین پادشاه سلسله درف ترار اونقدر به قدرت خودش ایمان داشت که هیچ وقت حتی فکر نابودی فرمان رواییش رو هم نمیکرد. بعد از اون پسر رو نوش بودن که سلطنت رو حفظ می کردن آه فردو یک دژه نظامی بود که در دل کوه ساخته شده بود و اونقدر زیبا بود که چشم هر کسی رو به خودش خیره میکرد و اصروتش رو از دل زمین به دست می برد. از جواهرات گرون قیمتی که از دل سنگ ها بیرون آورده می و عرقه های از این طلاک مثل رودخونه تو دل سنگ جریان داشت مهارت مردم دورف تو این کار مثال زدنی بود اونا با استفاده از الماس و یاقوت یاغوت سرخ و یاغوت کبود وسایل بسیار زیبا و با ارزشی می سختن. اونا هر روز به عمق بیشتری از زمین نفوذ میکردند و اونجا بود که اونو پیدا کردند. در قلب کوهستان سنج هرکن ترار اسم این سنگ رو جواهر پادشاه گذاشت و از اون به عنوان یه نشونه استفاده کرد ای که ثابت میکرد حکومت اون جاودانیه همه یه حکومت ها با اون بیعت کردن حتی ویل پادشاه الفها ها اما سالهای صلح و خوشبختی زیاد ده نیاورد. روزهای خوش کم کم سرون و نگرانی و استراب جاشو گرفت علاقه ترور به طلا روز به روز بیشتر می شد حرس و آزش به یه بیماری بدل شد یک مریضی روانی و جایی که یک مریض روانی حاکم باشه اتفاقات بدی برای اون سرزمین میافته اولین چیزی که شنیده شد صدایی مثل توفان بود که از سمت شمال به طرفش رو میاند باد خشک و سوزانی که از بین درختان کوهستان میگذشت و اونا رو در هم خورد میکرد حالین ناغوز خطر بزن اگونه گه بلا بیان چه بوجودیه؟ اشده ها اون یه آتشین بود که از شمال بیمان اشده های اسماک تو شهر گذاشته همه به خاک و خون کشیده شده اما این شهر برای اسماک هیچ ارزشی نداشت چشمش دنبال چیز دیگه ای بود. اجدها با آتشی وحشیانه و درند خوب به دنبال طلا نظامیه بر نابود شده بود اجدهات تا روزی که زنده بود از غنایمی که به دست آورده بود محافظت میکرد براندویل حاضر نشد جون رو برای مبارزه با اجده به خطر بندسه اون روز از طرف الف ها هیچ کمکی نرسید روزهای بعد از اونم همینطور. دورف های از سرزمینشون زمینشون فرار کردند و توی دشت و صحرا سرگردان شده بودند. مردمی که زمانی ثروت و قدرت بسیاری داشتند حالا به فلاکت افتاده بودند شاهزاده جوان دورف برای سیر کردن شکمش تو روستاها ها کار میکرد. اما همیشه به یاد کوهستان دود گرفته در زیر نور محتاب درختان آتش گرفته همچون مشعلهای سوزان اجده بود که با آتش کشیدن زمین و آسمان شهرش شهرشو با خاک سر کرده بود یک اون هیچ وقت فراموش نکرد و نخواهد کرد خب فرودوی عزیزم اونجا جایی که من ازش اومدم به طور خیلی اتفاقی و با درخواست یه جادوگر سرنوش مقدر کرد که منم بخشی از این داستان باشم ماجرا اینطوری شروع شد که البته خودتم حدس میزنی یکی بود یکی نبود یه حابید بود که توی حفرهی در دل زمین زندگی میکرد البته نه از اون حفره های که بوی بد و رطوبت میدن اونجا خونه یه هابیت بود یعنی پر از غذاهای خوشمزه با یه فضای گرم و صمیمی خلاصه یه خونه یه گرم و نرم نونم. این دیگه چی؟ یه چیز خصوصیه دستای نوچه تو بهش نزن هنوز آماده نشده برای چی آماده نشده؟ برای خوندم این دیگه چیان؟ ها؟ جواب دوتنامات برای مهمونی. راست میگی؟ مره مگه امروزه؟ همشون گفتن میان البته به جز سگویل بگینا که انتظار دارن شخصا دعوتشون کنی آجدن مگه از اون ناشه من رد فکر کنم خیلی هم بدشون نیاد احتمالا فکر میکنن خونت پر از کنلای تلاییه همه صندوق طلا بود که خیلی هم پر نبود تازه هنوزم بوی ترور رو میده معلوم از چی کار داری میکنی؟ ما و صف میچسبم نگفتم یه بار داشت ظرفای نغرمونو بلند میکرد که مچشو گرفتن؟ چی؟ لبیلیا بگ. اون پیر زنه از خانواده بگینز همه یه چنگالامو کرده بود تو جیبش ها. زنی که یه دست کچ همیشه باید چشمت بهش باشه البته بعد از اینکه من وقتی من ها. تو چی؟ من نداشتم هیچی تا ها مردم یه حرفایی دربارت میگن اما اونا فکر میکنن رفتار عجیب شده عجیب میگن منزوی شدی منزوی من مزخرفه پسر خوبی باشو اینو ببر به روی در فکر میکنی میاد چی؟ گندال اون هیچ وقت همچین موقعیتی رو از دست نمیده یه نماش عالی برامون را میندازه حالا میبینی باشه من میرم کجا میری؟ دارم میرم جنگل فارسینگ شرقی میخوام قافلگیرش کنم باشه برو بادو که یه وقت دیر نرسی اون از دیر کردن خوشش نمیاد من هم هیچ وقت دیر نمیکردم. اون زمانه من همیشه کارام و سر وقت انجام میدادم. یادم دقیق و قابل احترام بودم و هرگز اتفاق نخواست ای برام نمیافتاد این داستان سفر غیر منتظره. سال قبل <تصفيق> روز بخیر منظورت چیه؟ الان آرزو کردی روز خوبی داشته باشم یا نگفتی چه من بخوام چه نخوام روز خوبیه؟ او شاید هم میخواستی بگیم روز احساس خوبی داری یا اینکه که میگیم روز میتونه روز خوبی برای من باشه بکنم منظورم همه بود میتونم کمکتون کنم حالا تا ببینیم من دنبال یکی میگردم که توی ماجراجویی همراه هم باشه ماجراجیی راستش فکر نکنم هیچ کدوم از مردم شرق بری علاقه به ماجراجویی این حرفا داشته باشه کارتون مخ اعصاب خورد کن و امیتون را راحت کنند. دیگه تا از وقت نارم میگذاره روز خوش خیلی بده که آدم انقدر زنده بمونه که کارش توی این ملک مثل گده ها به جایی برسه که یکی مثل هی به آدم بگه روز خوش ببخشید متوجه نشده تا عوض شدی منظورم اینه که اصلا آدم خوبی نشدی بیر ببنگه شما چماره میشنستم از روی اسمم حتما میشناسیم هرچند فکر نکنم یادت بیاد که واقعا چی هستم من گندالفم گندالف یعنی خب خوض... یعنی من آه نه گندالف آه گندالف همون جادوگر دوره گرد که شبای تابسون میمد تو که پیر و بازی خیلی باحال را میندفت از <laughs> فکر نمیکردم کردم هنوزم تو این کار باشیم خب کارو دیگه ای بلد نیستم خوشحالم که حد یه چیزهایی راجع به من تو بعد اتوجه فقط مربوط به آتش بازیام باشه. خب تصمیممو گرفتم. واسه خودتم هم خیلی خوب میشه. منم حسابی سرگرم میشم. باید برم بغیرا خبر کنم. چیو خبر کنی؟ واسا نه, نه نه نه نه نه. واسه. ببین قربونت من اصلا دنبال مال جویی و این چیزا نیستم. خیلی خوب شما رو به خیر و ما رو به سلامت. برو یه سری به مردم بالای تپه یا اون طرف رودخونه بزن. و لطفاً تو هستم در خدمت هم دل با خدمت از ماست ببینم ما هم دیگر نه از کدوم طرف برم اون پایینه چی چی چی اون پایینه خب شام دیگه اون گفت کلی غذا هست منگو رسنامه ببینم اون گفت چی گفت بازم داری؟ آه آره آره آره, آره. آره. آره, آره. آره. بزن ببددم خوب راستش میدونی من اصلا انتظار مهمون نداشتم دارن <صدق> در میزنم؟ بالین در خدمتم شب خوش بله بله شب خوبیه البته فکر کنم یک کم دیگه بارون بگیره <تصفح> دیر کردم دیر کردی واسه چی؟ ها ها ها. سلام داداش <تصفح> سلام داداش خودم از آخرین باره که دیدمتم چاختر شدیم کتولتر چاختر شدم ولی کتولتر نه معلومه بردمون ساخته آه بیا ولی معذرت میخوام نمی‌خوام اما بشم اما راستش زیاد مطمئن نیستم که شما آدرس رو درست همراه باشه. یه نخواید نکنید من از مهمون بعدن میاد خب مهمون حبیب خداست. چیه؟ در خونه حبیب هم به روی مهمون بازه ولی خب دوست دارم قبل از که بیان اونارو رو شیر هم شیکردن فانیلی. فر براسه بله داشتم میگفتم که خب آخ مگه طويل است. بیا ببینم اولش ولی باید بفهمم که اینجا چه خبره. از خوهی میکنم. بس خواهید تذیرفته شد آه. پرش کن دیگه داد اصرا منو نگاه میکنی باشه اما این آخریش اون اصرا میکنی میخوایم اصرا رو فیلی و وکیلی در خدمت خستی. هستیم شما باید یه بگینز باشین خیلی ببخشید اینجا اشتباه اومدید چی؟ یعنی این مراسم لخف شد بس شرا به ما نگفتن هیچ مراسمی لخف نشد خیارم راحت خیارم راحت شد <تصفيق> موازدشون باش تازه دادم تیزشون کردنا چه جای باحالیه خودت درستش کردی؟ نه نه خیلی اینجا خونه آبا اجدادی مونه اون جبه جواهرات مادرم میشه بهش لگت نزنی کلی کلی بیاین به ما کمک کنیم آقای دوالین بجره اینا رو ببریم بیرون وگرنه بقیه دیگه جا نمیشه بقیه سب کنیده ببینم دیگه کیا قراره بیان نه نه کسی خونه نیست بریون یکی دیگر خونه خراب کنی همین الانشم کلی ظرف اینجا کنگر خوردن و لنگر انداختن اگه دارین شوخی میکنین باید بدونید که این اصلا بامزه نیست اصلا دیگه دارم از کونه در میرم جدی میگم تمومش کنین <تصفح> ببخشینا اونا خوردنی نیست بزارش سر جاش می کنم بزارش سر جاش اون نه خواهش بکنم میخوایش آقوی پندیلی بدم خدمت لازم نیست همه شوی جا میبله آه نه آه نه نه نه نه نه اون سندلی پدر بزار گبله بزارش سر جاش اون یه عتیق نمیشتامم چی میگی اون اون اون اون او نحشان بزار سمین اون نحشان بذار سمین خواهش بکنم خیلی مذارت میخوام آقای جندال میتونم گفنجون بابونه شما رو مهمون کنم نه نه ممنونم داری اون برای خودت یه لیوان آبالبالو اگه میشه برام بیار بیلی کلی آن کلان دو الین بالین بیشتر باور باور باور داری نوری میشه ولش کنی نه خوش میکنم من نه آری آورش کوچیک و دستم گیره آبازه اینطور که پیدا شد که از دوبار نیومده میا تو راه رفتر شما در ملاقاتی که داشتیم آقای جندال، اون لیوان آبالمبلی که خاص بودی نو براتون آوردم خونه و تازه است میشه جان کنی. آه، ممنون. اون دست است. آی می چه نوشیدنی اینوشیدنی بخواد؟ بفرماییم بردر لیواناتو بار کنه بردر من،, من واقعا اصفا همون رومیزی ها دسمال صفره نیست چرا سراغ سراغه برد بله باید هم باشه ببین یه گلاب بافیه نفت. چه جالب گلاب بافیه هم الان گواب نشکنه خدای من من چه گناه مرتکب شدم بیل بایه چه آه. مشکلی بیش اومده چه مشکلی پیش اومده کولیدورف منو محاصری کردن اونها چیز جون من میخواه اونها اصحابی اهل خوشگذارونی هم به ساکی بهشون عادت می‌کنی نمی‌خوام بهشون عادت کنم اونا گند زدن به آشپز خونم فرشام شده دیگه گِل و لجن یخچالمو قهرز کردن دیگه نمی‌خوام بگم چه بلای سر دستشویی ما آوردن چاگه چ کلاً گرفته اصلاً اونا توی خونه من چیکار می‌کنن موز می‌خوام ببخشید مزاحم تو شدم میشه بگی درم من با این بو شقامم چیکار کنم هی یوری بو شقابتو بده من ها ببخشید اونا چینیای مادرم هستن بالای سر سال عمرشونه میشه این کارو باهاشون نکنید. بگی. تلاش اونا گریه میشن اون. هر Oh, no, no, اونا راحت باشه. تماما همه. بالاخره اومد. فکر کنم گفتی راحت میشه اینجا رو پیدا کرد. گم شدم. دوبار اگه اون آلامات روی در نمود هیچ وقت نمیتونستم پیداش کنم علامت؟ هیچ علامتی روی اون در نیست هفته بیش خودم رنگش کردم چرا یه علامت هست؟ خودم روی در کشیدمش بیلو باگنز اجازه بده رهبر گروهمون رو بهت معرفی کنم تورین سپربلوتی پس این حابیته ربینم آقای بگیز نیست. حالا با کسی هم جنگ گیدی تا بر یا شمشیر قدومه انتخاب میکنی. حب میدونی باید بگم که ما زمانی که بچه بودیم زیاد از این بازی ها انجام میدادیم ولی راستش نمیفهمم چه ربطی به موضوع الان داریم همونطور که می زدم این یه بچه بقاله تا یه دوست از ملاقات با ادلوین چه خبر؟ همشون میاد؟ ولی درفا از هفت اقلیم میاد. درفای ایران هیل چه؟ با ما اونا نمیاد افتن که این مشکل ماست و خودمونم باید حلش کنیم ببخشید شما چه مشکلی داری؟ بیر با رفیق شفیقم میشه یکم نورو بیشتر کنیم در شرق دور انسوی ها و رودخانه ها مشک جنگل ها و زمین های باگر یه تک و تنها سر به فلک کشیده آ کوه تنها درسته این نشانه خونده و نشانه ها میگن که دیگه وقتش فرارسیده همونطور که تو پیشگویی اومده کلاغایی دیده شدن که به سمت کوه برمیگشتن و وقتی پرند آبه ربر برگردن دوران حکومت حیولا به سر میاد خواب اه... کدوم حیولا؟ خواب بهش میگن اسما وحشتناک وحشدناک بازارترین و بدترین بلایی که به سرمون اومده با نفسی آتشین دندونایی به تیزی تیغ با چنگال هایی که مثل چنگک به گوشت فرو. بله فدا میدونم اشتاها چیه من که اصلن ازش نمیترسم میرم بالای سرشو بهش نشون میدم شمشیر دورفا چه مذهی داره حتی با داشتن یه ارتشم بازم کار سختی در پیش داریم ولی الان فقط سیزده نفریم تازه نه سیزده نفر از بهترینها و باهوشترین ها شاید تقدادمون کم باشه بری هممون جویم. هممون تا آخرین نفس. فراموش کردین یه جادوگرم کردم داریم گندالف یه زمانی کلی رو از پا در می آورد. خب هم نیست من نگفتم. فنا چن تا بودن چند تا اجدها کشته. جانم. زود باش. باش. اگه ما این نشونه ها را دیدیم فکر نمی کنه بقیه هم دیده باشنشون همه جا شایه هایی پخش شده شهست ساله که اونش جایی دیده نشده خیلیا به اون کوچش بگدن و دارن چالش این کار را سباک سنگیم می کنه. ممکنه سروت عظیم مردم ما بدون محافظ رها شده باشه اما ما دست رو دست نمیذاریم که بقیه بیانو دار و ندارمونو غارت کنن. دنبال فرصت بودیم این برای پس گرفتن هره بار پسش میگریم برمیگرم یادت در درمازه اصلی بسته شده راهی برای ورود به اون که نیست آبانین عزیز این نیست این از کجا آوردی پدرت اینو به من داد ترین ازم خاص مراقبش باشم بیا بگیرش اگه کلید هست حتما یه دریم هست این نوشته ها از یه راه مخفی به سمت سالن پایینی خبر میدن یه راه ورودی دیگهم هست البته اگه پیداش کنیم درهای درفها وقتی بستن نامرئی میشن جوابش یه جایی توی این نقشه پنهانه و پیدا کردنش کار من نیست ولی تو سرزمین میانه کسانی هستن که میتونن انجامش بدن نقشه که من توی سردارم باید کاملا مخفیانه و با شجاعت زیاد انجام بشه اگر مراقبا باهوش باشیم فکر میکنم عملی میشه برای آره، همین یه دوز لازم داریم آره یه دوز حرفی یکی که این کاره باشه خب تا اصلی دیگه هم. چی هستم؟ خوبه اعتراف کرد که دیگه این کاره از. ها کی من؟ نه بابا من که دوز نیستم اصلا تو من تو عمرم هیچ چی رو ندوست دیدم متاسفانه باید بگم باش موافقم اون عمرن این کاره نیست اونجا جای این بچه مصبتا نیست اون حتی شروارشم نبیتونه بکشه بالا این کافیه اگر من میگن بیل بابا جینز یه, یه مطمئن باشین همین طوره حبیدها خیلی آهسته راه میرن در حقیقت اگر بخوان میتونن مثل روح از یه رد بشن اون اشتها بوی ما رو میشناسه اما بوی یه حبید براش کاملا ناشناخته است که این برای ما مزید بزرگیه تو ازم خواستی این اوز این گروه ها پیدا کنم و من آقای رو انتخاب کردم لطفا نگاه به ظاهرش نکنین اون خیلی قابلیت ها داره که شماها نمیدونید خودش هم نمیدونه باید به من اعتماد کنید خیلی خواب هرچی بگه قبولیم نه،, نه نه نه نه قرار داده باش پدارم نه نه, نه،, نه. بده. نه. خواهش رو قرارم قبول کنیم یه قرارداد آتیه خلاصه هزینه ها، زمان لازم دست مسائل کفن و دفن و این چیزها آه. مسائلی کفن و دفن نمیتونم امنیتشو تزمین کنم متوجه مصبول سر نوشتشم نیستم قبوله. مبلغ قرارداد تا یک چهارم درآمد البته اگر درامدی به دست بیاد در پایان قرارداد قابل پرداخت خواهد بود منصفانه است در منصفانه است گروه در قبال موارد زیر هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیرد خواب زخمی شدن درآمدن دلروده با خاکستر یکی شدن با خاکستر یکی شدن این یعنی چی وقت آره توی کشب آمدن ممکنه به خاکستر تبدیل بشی حالت خوبه بذارم آره خوبم خوب فقط می که که مثل یه کوره آتش بالدار می من باید کم هوا بخورم یه نور شدید بعد احساس سختگیه پاف بعدشم تبدیل به خاکستر میشی می شی نباید اینطوری می حالم خوب میشه، فقط بذارین یه دقیقه بشی نماشه الان یه ساعته که اینجا گرفتی نشستی بگو ببینم از کی تا الاخر توپرتای مادرت برات مهم شده مگه اونا چه اهمیتی دارن؟ یا حبیت جوونی رو یادم میاد که همش توی جنگل دنبال اجنه نمیگشت تا دیر وقت بیرون بود و بعد از تاریک شدن هوا میومد خونه و کلی گل و شاخ و برگ و تا با خودش میآورد خونه اوی تو جوانی که بیشتر از هر چیزی دوست داشت بفهمه پشت مرزهای شاعر چه خبره دنیا رو نمیتونی تو کتاب ها و نقشه ها پیدا کنی دنیای واقعی اون بیرونه ولی من نمیتونم همینطوری دل به دریا بزنم من یه بگینسم؟ از خانواده بگند همچنین تو یه توک هستی می دونستی جد جده جدت جدهت بولرار توک اونقدر جستش بزرگ بوده که می تونست سوار به باقی بشه بله خوبه تو جنگ گرینفیلد چنان به صفه گوبلین ها حمله کرد و طوری گرزش رو به سر پادشاه گوبلین ها که کلش کنده شد و صد مترف هوا و افتاد توی سوراخ خرگوش البته اونا جنگو بردن گلف گلفم هم از همونجا اخترا شد خالی بندیم حدی داره خب برای جذاب شدن هر داستانی باید یکم بهش و برگ داد وقتی برگردی یکی دوتا داستان از خودت داری که تعریف کنی <تصفح> میتونی بهم قول بدی که بر نه تازه اگرم برگردی مثل سابق نیستی <تصفح> همین فکر رو میکردم ببخشو این گندار. نمیتونم امضاش کنم به خال نزدی این دفعه این که پیداست دوزمون از دست دادیم شاید به نفعمون باشه ولی هیچ وقت شانس با ما یار نبوده بعد از این همه وقت حالا چی هستیم؟ بازرگان، مدنچی، وصل دوز، عروس اکساس، پین دوز هیچ وقت اسطوره نخواهیم شد آنوز چند تا جنگ جو بین داریم <تصفيق> جنگ فسیل من یه مویه هر کدوم از این دور فرا و کل ارتش آیرون حیر نمیکنم نمیکنم. چون وقتی ازشون کمک خواستم کمکم کردن و شرافت و یه قلب بزرگ دیگه بیشتر از این چی میخوام؟ مجبور نیستی این کارو بکنی تو حق انتخاب داری مردممون به احترام میذارن تو کوه آبی زندگی جدیدی برای مردم ما رو انداختی یه زندگی آروم و راحت زندگی که ارزشش از تمام طلاح های توی اربور بیشتره این کلید از پدر بزرگم به پدرم و از پدرم به من رسیده اونا رویای روزی رو می که درفایی رو بار به سرزمیشون برگشتن حقیق انتخاب وجود نداره بالین نه برای من پس <تصفح> ما هم همراه پسرم تا آخرش ادامه میدی <تصفح> <تصفح> سلام چه دارید میرید؟ ببخشید، وقت ندارم، دیرم شده برای چی وقت نداری؟ برای ماسی را چوئی <تصفح> صاب کنید صاب کنید، <تصفح> صاب کنید صاب کنید صاب کنم ببینیم چی میگه؟ امزاش کردم ظاهران همه چیز مرتبه بسیار خوب آقای بگینز به دار دسته تورین سپربلوتی خوش اومدی یه به کوچک بهش بده نه نه نه نه نه اصلا لازم نیست مطمئنم پیاده راحت ترم آده دارم تعطیلات برم پیاده روی خیالتون راحت من اصلا عقب نمیمونم های نوری، ردش کن بیاد ولی ممنون این دیگه چی بود اونا شرطمندی کردن سر این که تو میایی یا نه اکثرشون گفتن که تو بر نمیگردی هم وقتا چی فکر میکردی؟ پسر جون من حتی یه لخزم به تو شک نکردم اوه اوه مویا بهش بیش آلرژی بدی دارم واه ببینم لطفا واسید باید برگردیم ای بابا بس خبر شده الافه مو چرد دستمال شخصی کجا گذاشتم یا مال بده بگیر اه آجات به خیال دستمال شخصیت بشه و همینطور خیلی چیزهای دیگه بیل ببینی. حداقل تا وقتی که سفرمون به پایان داره. تو در تپههای همبار و کنار رودخونهای کوچیک شجیر به دنیا نه. و دی خونه دیگه پشت سرته و دنیا پیش رود. خوش چه دختر خوبی؟ این از بین خودمون میمونیم میرده اون چی بود؟ اورکا اورکا؟ گردن زنا خیلی هاشونون بیرون میپلکن سرزمینه پست تحت کنترول پست تحت کنترل اون هست وقتی همه خوابن با اصبای کوچیکشون <متبوش> میانا <متبوش> حمله میکنند بدون هیچ سر و فقط یارم آدم خون میبینی رذار شما خنده داره؟ فکر میکنین شاوی خونه ارکا شوخی برداره؟ ببخشید منظوری نداشتیم معلوم که نداشتین شما چی از این دنیا نمیدونین بهش اهمیت نده در این هزار تا دلیل واسه تنفر از اورکا داره بعد از این که اجدها کوه تنها رو تصرف کرد ترور سعی کرد تا قلمرو به باستانی دورف ها، یعنی موریا رو دوباره احیا کنه ولی دشمنمون زودتر به اونجا رسیده بود سباه اورکا به رقریه یکی از فاسدترین فرماندهشون موریا رو تصاحب کردن موریا توسط سباه اورکا تصاحب شده بود و فرماندشون یکی از پسترین اورکای روی زمین بود آزاگ دی حرمت یه ارکی از ایمون از خاندان گنداباد که قسم خورده بود نسل خاندان دورین از روی زمین برداره ولسمه سرش ها رو بد کرد ترین <تصفيق> پدر ترین از شدت ناراحتی دیوونه شد بعدم نابدید شد شاید هم کشته شد کسی نمیدونه ما بدون رهبر بودیم سرنوشتی جز شکست و مرد در انتظارمون نبود اونجا بود که اونو دیدم شهزاده درف جوانی که به جنگ اون اورک رفت و جله روم ایستاد سرش پاره پاره شده بود و تنهای شاخه درخت بلوط به عنوان سپر داد. اون روز آزاک فهمید که به این راحتیان نمیتونه خاندان دورینو از صفیه روزگار محف کنه مرگان این جا صبح بیا با ما بجام دیروه ما دوباره جمع شدند و ارک ها رو فراری دادند و اونا رو به عقب برگردوندن دشمنمون شکست خورده بود اما اون شب از جشن و شادی خبری نبود ما در غم عزیزان از دست رفتمون نشسته بودیم تعداد کمی از ما زنده مونده بودن اونجا بود که با خودم فکر کردم. اینجا یه نفر هست که میتونم ازش پیروی کنم. یه نفر هست که میتونم اونو سر کرده. او نورکه شد؟ چه برای سرش اومد؟ برگشت به همون سوراخی که ازش اومده بود زخمای امیقی که برداشته بود خیلی وقت پیشنو به درک واصل کرد و بگیت اون درفایی کسیف رو پیدا چاردیم ای آقای جندال نمیتونی این بارونه یکاریش باخنی. ببین بارون بارونه آقای دوار ارونم تا هر وقت که بخواد ادامه پیدا میکنه اگه میخوای با هوای دنیا را عوض کنی بهتره بری دنبال یه جادوگر دیگه مگه هست چی؟ جادوگر دیگه هم هست پنج دا دیگم هست بزرگترین جادوگر بین ما سارومان سفیده و بعدش دو تا کاهنم هست یکی دیگم هست که اسمشو فراموش کردم خب پنجمین نفر که اون اسمش هست راداگاسته. قهوهی. اون جادوگر بزرگیه یا نه یکی مثل توه اون تو سبک خودش یه جادوگره خیلی بزرگه روحیه حساسی داره واسه یه همین ترجیح میده با حیوانا باشه تا با آدما. اون همیشه از جنگلای انبوه شرق محافظت میکنه که خیلی هم خوبه چون نیروهای شیطانی همیشه دنبال یه پایگاه تو این دنیا هستن خوب نیست اصلاً خوب نیست اوه یا سباستیانو نگاه خدای من عزیزم. این اقعا باشه رضای خودم دونش شلوک نکنی <تصفيق> نمیفهمم چرا تاثیر نداری. باید یه افسون سیاه باشه افسون <متصفيق> سیاه یه افزونه سیاه و قدرت لی دو مادر جنگل قدیمی نشونم بده اینجا میمونیم بیلی گریه مراقب اسبا باشین از کنارشون جمع نخورین یک و خانوادش اینجا زندگی میکردن آینگلاین آتیش را بندازید بروی چشم من فکر میکنم هرچی زودتر از اینجا بریم برامون بهتر باشه میتونیم خودمونو به دره پنهان برسونیم قبلنم بهت گفتم من به هیچ به اونجا نستیک نمیشم چرا؟ الفا میتونن کمکمون کنن. میتونیم استراحت کنیم و ازشون غذا و راهنمایی بگیریم. نیازی نیست. ما یه نقشه داریم که نمیتونیم بخونیمش. لرد ال میتونه کمکمون کنه. وقتی اجتهاب به بر حمله کرد، الفا چه کمکی بهمون به کردند؟ و وقتی ورکا به موریا حمله کردند و به چلالای مقدسمون بی‌احترامی کردند، الفا نشاستن فقط نگاه کردند. راستم می‌خوای از, از کسایی کمک بخوام که به بزرگو، بزرگم و... خیانت کردم. تو از جنس اونا نیستی. من اون نقشه و کلید رو بهت ندادم که کنار خاطرات گذشتت چالشون خودت, خودت چرا این همه وقت نگهشون داشتی؟ همه چی مراتب؟ ببینم گندالف کجا داری میری ها؟ میرم با تنها کسی که این دورو برعقلش سر جاشه خلوت کنم. خب اون کیه؟ خودمم آقای بگینز. امروز به حد کافی با دورف و سرکله زدم خود باش با بور. ما گرست ببینم اون بر خیلی وقته که رفته کی گندالف دیگه اون یه جادوگره هر کاری دیرش بخواد میکنه اینو برو بده به بچه ها دیگه چقدر میخوریم موزوشه ما باید موازه به می بودیم حالا یه مشکل کوچیک داریم قبلا 16 تا بودن ولی الان 14 تا و بانگو گم شدن آره خبر خوبی نیست راستش اصلا خبر خوبی نیست ولی بهتر نیست به طور بگیم ها؟ آه نه بهتر نگرانش نکنیم به عنوان گروه گفتیم شاید بخوایی نگاهی به این بندازی خب یه چیزه این خیلی بزرگین رو از جا کندتشون با هم فکر رو میکنیم یه چیز خیلی بزرگ و احتمالا خیلی خطرناک هی یه نور اینجا بیا بیاین بشین لکی هستم رسم آمونو میبره ما باید هتمن یک کاری بکنیم آره تو باید بکنی ترال های کوهستان خیلی کند و احمقن و تو چون کوچیکی نمی بینید هیچ خطری نداره ما درست پشت سرتی اگه مشکلی پیش دوبار مثل جغد سفید و یه بار مثل جغد شاختار <تصفح> <تصفح> دوبار مثل جغد سفید و یه بار مثل جغد شاختار ببینم به نظر از اون این فکر خوبیه <تصفح> دروز گوشت گستفند امروز گسته گوشت گستفند همینجوری پیش بره خودمونم <تصفح> که گستفند من اینا اصول ولی من گوشته دوست ندارم خوشم نمیاد گوشتشون چربی ندارم ولی از اون کشا فیر که بیتران همش بود داستخون بود من <تصفح> فکر می کنم تیکاش لا دندونم گیر کرده این طریق بهتر میشه. شه بیستر <تصفح> می <میخوایم> هستا نهستا <تصفح> چی گفتی لازم نکرده؟ میخوای دل رودشون رو در بیاری من آشق سیلاب شیردونشم با چشم کافتم بگی، بتواند میخوایی اون اسما رو باخریم یا نه تو تا هرچی ما هم بدم میخوری فایدی؟ تا وقتی که تو آشپز باشی همه چیز یه مزه میده همه چیز مذه مرگ میده البته به جز مرگاش که مده ماهی میده یه دستت درده کنه بگی نمیمیریا خیلی ممنونیم برس فضای خوشمذهی بود برس دیدین گفتنش کاری نداشت فقط کم فضله سنجاب کم داره بذارش سر لیوانه منه آه آه چرا میزنی؟ آخ خوش‌خبی می‌دون شده. خیلی خوشمزه است. ببین به تو دهنت بخور. ببین چا خوشمزه است. خوشمزه نیست؟ ببین می گناش کردی. او چه بود؟ شکمم قاراغور میکنه باید یه چیزی بریزم توش گوشت میخوام گوشت وای نه برد ببین چی از دماغم اموند بیرون اون دست و پاهم داره. این چی هست؟ چنین ولی وقتی میخوره چندشم میشه تا چی هستی؟ یه جور سنجابه گنده؟ من یه دوزدم نه یعنی یه حابیتا <تص uno> چی؟ تو یه حابیتا دوز میشه بپذیمه آزمه سابتا در بیاریم یه لاغمه هم شاید هابیتای بیشتری <تص> هم اینجا باشن اون وقت میتونی باشیم پیراشکی ای تو بازمین دو نواره غایم شدالیا نه. نه نه نه. دو دروغ میگه مثل چیز انگوسه چوبگیو آتیش. نه نه نه. میگه. حرفم گوش کنید. ها لا. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها.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 اوه اوه اوه دلمو شو انا اونو کش میکنیم دادشیشه را میشنو بهش نمیشه که بخورن بهش نداره چی بیافتیم. دوست ندارم تبدیل به سنگ بشم. صب کنید آه. شما داری این اشتباه خیلی بزرگی میکنین بی خیال این حرفای اینا کم عقلن ما از اینا کم عقل کریم. منظورم آه. در مورد ادویه است مگه ادویه چشه ها؟ خواب رو بو کردین واسه خوردنشون یه چیزی بیشتر از نمک و فلفل نیاز داری ای خائن تو راجب از از مخت چیزی میدونی؟ تاکت بذار ببینم این چی میخواد بگه؟ <تصفيق> خب می‌دونید من رمز خوشمزه‌شدن دورفا رو بلدام می‌دونید آم... خب خب می‌دونید خب می آم... بلده بلده بلده. رمزش همینه که باید اول اول بیاد پوستشونو بکنید نه خواننده نه چون نه چی چیکار می‌کنی اوه چا گوی پوست کنی نه مالی تو می‌گیریس نه گنده تو دار می‌آره این مچخرفه من کلی آدمو با پوست خوردم تازه با کلی کفش و لباس و این چیزا ست از این دور ها رو خواب میخورده خت نه نه نه نه نه اونو نخور اون مریزه. چند؟ خب میدونید دل رودش دل رودش یه خورده کرم زده خودت راستش همشون کرم زده همشون انگل دارن و این خیلی وحشتناکه جای شما بودم این رو نمیکردم. انگل؟ ببینم اون گفت انگل انگلی نداریم انگل خودت رو هکره این وصله ها به باله میچسبه خودت انگلی شود... من یه انگل به بزرگی بازوم دارم منم بزرگترین انگل دنیا رو تو رودن دارم نهمتونشه رو متر ازشه بابر کنیم تو میدمم دارم من پر انگلم خواب حالا باز چیکار کار کنیم خواب ولاشون کنیم بره حرف کردی نمیدونم چی تو کلت بکزره آره این بولبولا گره سنانو شیره میوادا آتلو و خورشید تار خون تمومه او میدونم فکر کنم خوردن جان شکی این لعنت آخ ورا میشه بپرسم کجا رفته بودی رفتم آگنده رو ببینم چی شد برگشتی؟ به گذشته کار سختی بود بیلن که همتون سروم را البته به لطف دوزده تو. اون این کارو کرد تا وقت بخره هیچ کدومتون فکر اینجاش نکرده بودی اونا باید از اتن به اینجا اومده باشه از که حالات حالت را لایکوی اینقدر تا جنوب پایین اومدن خیلی وقتی این طرف ها نبودن آتا از زمانی که قدرت تاریکی به این سرزمین حکم فرما شده؟ اونا نمیتونن تو روشنای روز بیرون بیان. اصمعی نما میدوره برایه هست. این دیگه چه بوگه چه انشام اینجا گودال ترول هاست باشیم به چیزی دست نزنیم هزا بوی <تصحیح> <تصحیح> حیف نیست اینها رو بذاریم همینجا بمونه هرکی به خود میتونه برشون داره موافقم نوری یه بیل بده ساخته کار نیست. اهانگرای مام نمیتونن یه همچین چیزی را بسازن. اینا تو گندارلین ساخته شدن. اولین سلسله ی 100 ها برتر اونا را ساخت. شمشیری بهتر از این هیچ جا پیدا نمیکری. داریم واسه روز ممادان جمع میکنیم اونجوری نگاه نکن باید از اینجا بریم بیرون زود باشین بجام بین گفور گلاین نوری بیل بیا این مجاسته تو میخوره نمیتونم قبولش کنم این شمشیر رو یه الف ساخته که یعنی وقتی ارکای یا ها به همون نزدیک میشن به رنگ آبی میدن آخه من اصلا تو عمرم شمشیر دست نگرفتم امیدوارم وقت مجبور نشی ولی اگه شدی یادت باشه شجاعت واقعی به این نیست که بیدلیل خونه کسی رو بریزی بینه که زندگی ببخشی یا چه زیدانه میاد هم گندر هم بمونین اماده کنین عجال چی؟ اخ! راداگاست. راداگاست قرهبی. میشه به اینجا چیکار می‌کنی؟ دنبالت می‌گاشم گاندالف. یه مشکلی پیش اومده. یه مشکل خیلی بزرگ خب، چی هست؟ یه لحظه مهلت بده. الان یادم اوه! الان یادم بوده آیا یادم رفت الان درست همینجا بود تا که زبونم البته این الان فکر بیست این که ببینه یه حسنه کچیکه گندارف منطقه گرین وود مسموم شده تاریکی داره اونجا رو میگیره دیگه گیاهی روش نمیکنه البته به جز علف های حرز هوای اونجا مسمومه ولی این بدتر از اون تارانکبوتان تارانکبوت؟ منظورت چیه؟ انکبوتها جندلف انکبوتهای قول پیکر قول میدم از تخمه آنگولیانت هستن اگه نبود از افسونگری سفا میدم ردشونو گرفتم از دلگلدور اومده بودن دلگلدور؟ همام اگه اون قلعه متروکه نیست؟ نه گاندولف من سوچه نیست جادوی سیاه اونجا سایه افکنده اونقدر قویه که تا حالا نظیرشو ندیده بودم سایه ای از وحشت کوهن جایی که میتونه ارواح مردگان مردگانو احزار کنه من دیدم اشکندالف اون نکرومانسور از دنیا یه تاریکی بیلون اومده بوده عجره کنید سهب کنید بزرین منم بیا یکم بکش آرومت میکنه. بده بیرون گفتی یه نکرومان زور؟ تو بگونه این مال دنیای زنده ها نیست این صدای گرگ بود ببینم اون بیرون گرگ هست گرگ نه صدای گرگ نبود فرقای نگهبان این یعنی دستی ارکا باید همین رو برا باشم دسته بر مورد این سفر به جز خانوادت به کیا حرف زدی هیچ کس به کی گفتی؟ هیچ کس قسم میخوام هایم قسمست میتونم بگو چه خبره داریم این میشیم میشی. دیر نشده باید از اینجا بریم نمیتونیم چون که از اینجا رفتن من هواششون رو پرد میکنم اینا وارگاهای های هستند. هستن خیلی زود بهت میرسن اینا هم خربوش های هستند. هستن ببینم چند چندن هجه نکنی بیای بیای فرم بگیر here yeah. i cambe money No, You just to food, John <laughs> hey, E farar konin! Doran bishtar mishan. Gelin! Yandol! Bu بروتان ها گذاشت خلوهاتونو در بیارین خلوهاتونو در بیارین خلوهاتونو در بیارین عجیم طرف عجل نکنین اجام برو! این را به کچا میره بناتراتون بریم یا نه معلومه که میریم بریم بریم از کار باشه بریم اینجا در ایملادریسه ای در زبان مشترک به اسم دیگه ای شناخته میشه ریوندر اینجا آخرین معبد مقدس در شرق درگه هست اما یه اینا نقشی تو بودرسه؟ بیاییم و به دشمنمون فراخ بیارین؟ اینجا هیچ دشمنی نداری تورین سپربلوتی خودت میدونی اینجا هیچ کس به جز خودت با تو مشکلی نداره فکر میکنی الفا برای موفقیت ما دعا میکنم و میخوان جلال منو بگیرن معلومه که میخوان ولی ما یه سری سوال داریم که باید جوابشو پیدا کنیم اگه بخواییم موفق بشیم باید این کار رو با درایت و احترام انجام بدیم نباید کلکی هم تو کار باشه برای همین باید بذاریم من با صحبت کنم. نیتراندیر آه لیندیر مباسب باشی شنیدیم که وارد دره شدیم اگر با لورد لوند صحبت کنم اما لرد اینجا نیستم اینجا نیست پس کجاست دوست من تو کجا بودی؟ رفته بودیم شکاری دست ارک که به جنوب بودم چند تا نزدیک راهروی مخفی از پادرم باریم عجیبه که ارک انقدر به مرزهای من نزدیک شدن باید یه چیزی یا یه کسی اونها رو به اینجا کشونده بودم احتمالا به خاطر ما بوده ترین، ترین خوش اومدی ببینم ما هم دیگر رو میشنسیم رفتار شبیه پدر بزرگته من رو از زمانی که فرمان روای کوهستان بود میشنسیم هیچوقت از شما حرفی نزده بود نرسوی نویر تلسوی ویر نویان ونیان نسان وی اون چی داره میگه اون داره به ما توحین میکنه نه آقای گلاین شما رو به نهار دعوت کردم اه... اه... خب پس بس... میفرماییم شام امتحانش کن همش یه لغنست. من عهدگی آخری نیستم بس گوشتشو کن ببینم چیپس نداره؟ خیلی ممنون که دعوتمون کردی. لباس مناسب نپوشید. هیچ وقت نمیپاشید. این اورکریس گوبلن کش. شمشیر معروفیه که توسط الفهای برتر قرف ساخته شده پیشواندان من امیدوارم بهتون خدمت کنه این یکی هم گلام درینک دشمن شکنه شمشیر پادشاه گاندالینه که برای نورد با گبلین ساخته شده ناراحت نشی یا پسرم ولی شمشیرها از روی کارهای بزرگی که در جنگ ها کردن از میشن منظورت چه؟ یعنی شمشیر من توی جنگی نبوده؟ از این شک دارم که یه شمشیر باشه با بیشتر شبیه به یه نامه باز کنه از کجا آوردینشون؟ اونا رو تو مخفیگاه ترول ها در جاده بزرگ شرقی پیدا کردیم درست قبل از اینکه که بهمون به همون حمله کنن؟ شما تو جدهی بزرگ شرقی چه کار میکردیم؟ کار ما هیچ رفتی به الفا نداره خواهش میکنم تو اون نقشه رو بهش نشون بده تو میدونی که این میراس مردم منه؟ و وظیفه ایمان که از اسرارش محافظت کنم خدایا من از شر این دورفای لجباز نجات بده غرور بیجاتی جاکار دست میده ما اومدیم اینجا درست پیش یکی از معدود آدمایی که توی سرزمین میانه میتونه این نقشه رو بخونه اونو به لردر نشون بده نه تونید چه تو این نقشه توجه تو جمع کرده؟ بیشتر بحث تحقیقاته همونطور که میدونی این چیزا اغلب یه متن پنهان تو خودشون دارن هنوز میتونی زبان باستنی رو بخونی مگه نه؟ که؟ یست. تلسم ماه حتما همینه راحت نادیده گرفته میشه. در این مورد درسته. تلسم های ماه رو میشه فقط زیر نور محتاب و با همون شکل و تو همون فصلی که نوشته میشن خون. میتونی بخونی شو این متنها در شب نیمه تابستان زیر نور هلال ماه و حدود دوی سال قبل نوشته شدن اینطور که معلومه باید به ریوندل می وقت با شما یار تورین سپرمنوتی امشب همون ماه داره بی ما وقتی پرنده نوک میزند در کنار سنگ خاک بیست و هنگام غروب در روز دورین آخرین عشقی خورشید به روی سوراخ کلید تابیده خواهد روز دورین دیگه چیه؟ اولین روز سال جدید دورفها وقتی آخرین ماه پاییز و اولین خورشید زمستان همزمان تو آسمون دیده میشه خبر خوبی نیست تابستون داره تمام میشه چیزی تاروز دورین باقی نمونده هنوز وقت داری برای ورود باید درست در زمان مناسب تو اون مکان مشخص باشیم فقط اون موقع است که میشه اون در رو بازش کرد پس هدفتون اینه که وارد کوه بشین خب کشی. از نظر بعضیا این کار آقلانه نیست منظورت چیه؟ شما تناکت هایی نیستین که سرزمین میانه رو زیر نظر گرفتم با کمشون کردیم الفای پست به ما حمله کردن و بعد قبلشی نیکردیم باسمان بهونن نیاور. من سر. پادشاه دور فرو می خون دادمون خیلی کم بود کاری از دستمون بر نمیومد. خودم به زحمت جون سالم به در ولی حالا بخونت صبر کن شو و اون فوج کذیف به زودی خودشون رو نشون میدن به همه بگید برای سرشون جایزه گذاشتم بامار این دورها چه با ما چه بیما به اون کوه میرن اونا میخوان سرزمینشون رو پس بگیرن فکر نمی کنم تورین سپربلوتی حاضر بشه به کسی جواب پس بده و کنم منم لازم باشه جوابی بدم لازم نیست به من جوابی بدی بانو میتراندیر خیلی وقت شما رو ندیدم گذاشت زمان ممکن من عوض کرده باشه ولی بانوی لورین هیچ تغییری نکردم اصلا نمیدونستم لرد رونت شما را هم دعوت کرده. کار اون نبود من دعوتشون کردم سالمه این اباخر خیلی سرت شلوغ بوده دوست من بگو ببینم گند الف. واقعا فکر کردی این نقشه ها و برنامه هات از چشم ما پنهان میمونه پنهان؟ نه من فقط کاری که فکر میکنم درسته را انجام میدم مدت هاست که اون اشده مشغول کرده حق با شماست بانوی من اسماک از هیچ کس حرف شنوی نداره ولی اگه با دشمنمون هم پیمان بشه میتونه عواقب خیلی بدی به همراه داشته باشه کدوم دشمن؟ گندالف دشمن ما شکست خورده سران مغلوب شده دیگه هیچ وقت نمیتونه قدرت سابقشو به دست بیاره گندالف الان چهارصد ساله که ما در سلحا آرامش زندگی میکنیم سلحا آرامشی که به سختی به دست اومده ببخشید ما الان در سلحا آرامشیم درول ها از کوهستان پایین اومدن دارن دهکده ها رو غارت و مزره هامون رو نابود میکنن اور چا توی راه بهمون به حمله کردن نشونه یه چنگی. نیست نباید بیخود خودمون رو درگیر کنیم چرا دنبال درد سر بذارین ادامه بده یه اتفاق بدی داره میافته که خیلی وحشتناکتر از اسماگه چیزی بسیار قدرتمندتر. ما میتونیم اونا را نادیده بگیریم ولی اون ما رو نادیده نمیگیره منطقه گرینوود داره مسموم میشه مردمی که اونجا زندگی میکنن اسمشو گذاشتن میردوود یا همون جنگل تاریک اونا میگن چی میگن؟ ادامه بده بگو ببینم مردم چی میگن اونا از یه نکرومانسور حرف میزنن در دلگلدور که داره ارباح رو احزار میکنه امکان نداره تو این دنیا همچین قدرتی وجود نداره این حتما یه انسان فانیه یه جادوگر که داره با جادوی سیاه سر خودشو گرم میکنه منم همین فکر رو می‌کردم اما راداگاست اون رو دیده راداگاست راجب راداگاست با من صحبت نکن اون یه احمق تمام تمامم معلوم دارم آدم عجیبیه که تو خلوت خودش زندگی اصلا اینطور نیست مسئله اینه که اون به قارچ اعتیاط داره قارچ مغزشو فاسد و تمدوناشو زرد کرده بهت هشدار داده بودم برای یه ایستاری خوب نیست که تا این توی یه چیزی امراد آن... داری رادا به بهت داده اونو توی دل پیدا کرده بله نشونم بده. این یه یادگاری از مردور شمشیر مرگول, شمشیر مرگول. برای پادشاه آنگمار ساخته شد و به همراه اون دفن شد وقتی آنگمار شکست خورد مردم شمال جنازه با اموالش رو برداشتن و در تپه های مرتفع رودعور حبس کردن اون رو در اعماق سخراها دفن کردن توی مقبره بسیار تاریک جایی که هیچ نوری نیست این امکان نداره یه قدرتمند روی اون مقبره هاست که نمیشه اونها رو باز کرد چه مدرکی داریم که نشون بده این شمشیر از مقبره آنگمار اومده مدرکی ندارم چون مدرکی وجود نداره بذارین شرایط رو یه بار دیگه بررسی کنیم یه دست اورک جرأت کردن از برانینگ عبور کنن یه خنجر قدیمی پیدا کردیم و گه افسونگر که اسم خودش را گذاشته نکرامان صاف و تو قلعه مطروکه زندگی میکنه به نظر مسئله مهمی نیست اما مسئله ای که بجری فکر منو مشغول کرده مسئله دورف من متقاعد نشدم گندالف فکر نکنم بتونم از چنین خطایی به راحتی چشم پوشی بکنم اگه به سراغ خودم اومده بودن اینقدر ازشون ناامید نمیشدم در ضمن نمیتونم دلیل کمک رو درک کنم. بله تو میدونستی؟ متأسفانه هیچ کاری از دست ما برنمیاد. نمیاد. سربرم لرد دورف‌ها اونو رفتن. آواستون جمع باشه؟ تازه این وارد سرزمین وحشی میشیم. آره این تو این راه میشناسی جورا برات. وحشی. <تصفح> آقای بگینج بهتران را بیافتیم تو دنبالش میری؟ بله با کمک کردن به تورین سپربلوتی کار درستی انجام میدی اما میترسم تو این سفر با رو به رو بشین که ما شناختی ازشون نداریم قضیه شمشیر مرگل باید روشن بشه یه چیزی داره مخفیانه در تاریکی حرکت میکنه چیزی که از چشم ما پنهانه و خودشونشون نمیده البته هنوز نه اما هر روز داره قدرت بیشتری پیدا میکنه باید مراقب باشید <متحد> میتراندیر چرا اونها بید؟ نمیدونم سرومن فکر میکنه فقط با قدرت زیاده که میتونه جلوی اون نهری منو بگیره ولی من این طوری نمیکنم به نظر من همین چیزای کوچیک و رفتارای روزمره مردم عادیه که تاریکی رو دور نگه میداره چیزای ای مثل محبت و عشق و چرا مل شاید چون من میترسم و اون به هم دلگرمی میده نباید به ترسی می تو تنها نیستی هر سمون به من نیاز داشتی؟ من به کمکت میام این کار توفان نیست این جنگ توفان هاست رابی افدین نگاه کنین خدا به دادمون مرسی افسانه ها درست بودن پول ها پول اووو سموش ای جاست بی بوو ای جاست ای جاست хочешь она вита кочас он س از دست از وقتی خونش رو ترک کرده از دست رفته نباید میومد اینجا اون جای بین ما نداره به نظر هم میاد اون پشت نگاه کن کم پیش میاد یه قار توی کوهستانش نشده باشه؟ اینجا هیچی نیست خب پس این آتیش روشن کنیم نه اینجا آتیش نه بکم استراحات کنیم که روشن شد رو هم باید تو کوه منتظر بمونیم تا گندالف بهمون همون برسه برنامه همین بود برنامه عوض شد بفر شیفت اول نگهبانی با توه ردپاشون تازه است اونا دارن از كوهستان رد میشم باید بهشون برسهم مره ببینم کجا داری میری آه. برمی کردم به ریوندل نه نه نمیتونی الان برگردی تو جزوی از گروهی یکی از مایی راستش فکر نمی کنم تورینگو فیچ وقت نباید میبادم اینجا حق با اون بود شما دورف هستین و من لیبک نمیدونم چه فکری کردم نباید خونم را ترخی می برای خونت تنگ شده میفهمیم نه نمیفهمین شما هیچی نمیفهمین چون شما ها هستی به این مدل زندگی عادت کردین که همش تو سفر باشین هیچ جا آروم نمیگیرین به هیچ جایی هم تعلق ندارین متاسفه هم نمیخواستم حق با توی. ما به هیچ جایی تعلق نداریم امیدوارم هر جا از این ما اینو بابند میگم اون دیگه چیه چند ایدار Il <laughs> gomci <laughs> Don't come to jail! شکر کسی جرأت کرده مزلح وارد قلع روی من بشه جاسوسان؟ دوستان؟ قاتلان؟ دورف میباشن مربان دورفان؟ در برودی جلوی پیداشون کردیم کربان خب هم اینطوره بهشون زال نزنین بگردینشون این شکر یخو اکسی درن بریزین بگردین اینجا چه قلطی بکنه حرف بزنین خیلی خوب اگه نمیخوان حرف بزنن خودمون سداشونا در بیارید گوشتاخانو بیارید و سخون شکل هم از جاوی تری به ششی رو بکنید صاف کنید صاف کنید بح بح بح. توری پسر تری نبیه ترور. پادشاه کوه افتاد. او راستش یادم رفته بود که دیگه هیچ کوهی نداری و دیگه پادشاه هم نیستی باید بگم دیگه هیچ عددی نیستی یه نفرمیش رو که با کلی پول میده فقط سرت بدون متعلقاتش فکر میکنم بدون راجبه صحبت ساون میکنم اون یه دشمن قدیمیه او که رنگ پریده سوار بر واگ سفید آزاگ بی حرمت، دیگه مرده خیلی وقت پیش توی که جنگ به درک واسر شد از تو فکر میکنی درونش به سر اومده یا پیغمبر واسه وارکر رنگ بریده بفرست. ليش بگو من دشمنشو اسیر کردم. شکلم گولم دی ام چه نداره خفش آپستشو بچن سرش رو کن عین صخره و سنگ مثل استخون کهنه هیچ گوشیم دیگه رو شو نمونده سردا رو عین جن ولی عزیز دلم برای تو که خیلی وقت قضا نخوردی خیلی خوبه ما نه چطور عزیز دلم امروز چشم داریم به چه قضای خوبی ساکت شدی امروز سور ساعت براه چلوه به چربون نرمیه گوالوم گوالوم براقم اقام فاسا بد اختار میدم به من نزدیک نشو اون شمشه حیفا را داره ولی خودشی عرف نست حیفای اینقدر کچولا نستن فسانچیه تا چی هستی؟ اسم من اسم من بیلو بگینزه بگینز بگینز دیگه چه کفتی اسیسم من یه ها اهله اهل شایر آه، ما گوشت گوبلین ها خب باشا و ما ها را دوست داریم ولی تا حالا گوشت ها تو مزنده کردیم خوشمزه هست عبداره آه، نه،, نه نه نه نه برو عقب سب کن برو, برو عقب برو عقب تو مشبور نشم ازش استفاده کنم من دنبال دردستان نمی کردم فقط فقط به امراه خورجا نشون بده راه همو میکشم و میرم خیلی خوب یعنی گم بله. بله. میخوام یعنی کم شدی پیدا کنم او ما یه راه عمد برای حابیتا بلدیم یه راه عمد توی تاریکی خوشا من که چیزی نگفتم با تو که او چرا بودیم عزیزم بودیم نمیدونم این چه بازیه که داری از خودت در میاری ولی اینو بگم که ما عاشق بازی چه داریم؟ ما بازی مگه نه عزیزم بازی دوست داریم نه داریم داریم, داریم. داریم. بازی دوست داریم شاید چی میگی؟ خب نوبه ان چیز که ریش نشده دیده بلندتر از درخت تا فلک رسیده داب داب داب اما هیچ وقت روشتا کرده و نکشیده. کوه. کوهه <تصفيق> آره خب بزار یکی دیگه بپرسم آره بپرس بپرس بپرس از اون بپرس او نه چی خبری نیست کارشو تمام کن آه. همین حلق کلتشو بکن گره نه نه نه نه سب کن سب کن, سب کن. من, من میخوام بازی کنم جدی میگم میخوام بازی کنم اینطور که معلومه اینطور که مشخصه تو هم خیلی خوب بعدی بازی کنی خب بیا بیا بیا بیا با هم با همون معموازی رو ادامش بدیم فقط منو من و تو منو تو امانو تو امانو تو خب؟ <تصفح> فقط خودمون آره خودمون آره آره, آره، اگه من بردم تو مجبوری که راه بیرون رو به هم نشون بدی باشه باشه ولی اگه باختی اون وقت چه؟ نگه بخت عزیزم و یه لخمهش اگه بگی باخت ما میخوریمش قبولیم باشه قبوله اول بعدی شروع کنم روی تاپیه سرخ از... سی اسب از... سفید اول قطع کشیدند کنار هم رسیدند و سر جاشون ایستادند دندون؟ دندون آره حالا فریم عزیزم فریما فقط نو دندون داریم بیبین؟ نه نو نوبت ماست بی صدا گریه می کند بی پرواز پرفز بدون کنات بدوند میزند می بدون دهان زمزمه اه این ما میدونیم ما حالا می می آره فکر کنم بوده خبیت خیلی باهاشه خیلی باهاشه آنه نه نه سب سب کن بدون لولا در و کلید اما گنجی تلائی در درونش در دلش خواهیدید نه نه گنج چیز کلید گنج صندوقشه خب نخيلي سخته يا هيش متجمع بقى وقتي يلا سماع لا مرخه تخم مرقه تخم مرقه کوچولو و خوشمه ما در بازار کم یادم داد چطوری توشون رو بکشیم حالا این یکی داشته باش اون چیست چه بلعد همه چیست. هرنده و چرنده و هرانچه روی زمین می آه آهنه و فولادا سنگ سخت در برابرش می شود نیست یه نفسه محلت بده من کلی کلی بهت وقت دادم خیلی خواب خواهیش میکنم. کنم جواب اینو نمی دونم واقعا جوابش چیه جوابش چیه خوشمزه. نازیش. گوشتش چوری. بذار فکر کنم. بذار فکر کنم. گیر افتاده. زمانه تمومه زمان زمان زمان جوابش زمانه راستش خیلی سخت نبود زمانه اصلا کاری نداشت سال آخر آخرین شانسته بباس بباس باشه باشه خیلی خواب بگو ببینم چی توی جیب منه قبول نیست این قبول نیست تو داری جیر میزنی یه سال دیگه بپرس نه نه نه نه تو گفتی یه سوال بپرس خب سؤال منم همینه من چی تو جیبم دارم بگو باش آه آه باید حدس بزنیم سیسم. سه بار میتونیم حدس بزنیم ستا حدس میتونی بزنی آره شروع کن دست ده؟ اشتباه یه دیگه آه, آه نه اصبخان موحی دندون گوبلین بال خوب باش چی بتونه باشه شاخو خفشا اشتباه آخرین نا... یا هیچ ببین دوتا حتف و همدیگه قبول نیست هر دوتاشونم غلطه آه نه خیلی خوب دیگه من بردم قول دادی راه خروج نشونم بدی ما همچین خاری دادیم عزیزم قول دادیم خب بذار ببینیم چی تو چی بشید به تو هیچ ربطی نداره تو دیگه گمش کردی گم؟ گمش کردم گم کردم کجاست؟ نه کجاست؟ نه گمش کردم عزیزم عزیزم و نه کمش کردم کجاست کجاست کمش کردم نباید کمش میکردم کمش کردم عزیزم کجای کجاست چی چیو گم کردی نباید به اون ربتی نگاره نه گلوم کچی چه داره داره اونا دستیده تو اونا شیر آمد آمد آمد آمد من شمشی نسم. اون یه من اون چشم اون یه گوبلیکاشه. بایتر. چه چیزی 1000 گردن شده؟ چالا که شول بزنی مستش با کوشیر شول سرش رو لا حاج خودتون رو به الله کردین میتونین هم دستا فرار کنین حالا میخوای چه قلتی و کنی جا دیگر قراختا کردی؟ شود بشه. اونا خیلی زیادن. عرفشون نمیشه. فقط یه راه نجات داریم. لونا خرید. برم. یا show sure. Why? Baggins! <laughs> oh, baggins! Dust! You're not metal, you're freezing metal! Dust and dare me so much in a پیش! هفت! هشت! روپار! این هم کلی کلی کیلی! دوازده. خب این از بامورکه که میشه سیزده پس میل با کجاز! همیتمون کچ! گفتم همیتمون کجاست! لعنت به این همیت! فکر بیکردم همراه جاریه! به من چه! اگر ببینم آخرین بار کجا دیدیش! فکر کنم دیدمش که... داش فرار میکرد! بگو دقیقا چه اتفاقی افتاد من بهت میگم چه اتفاقی افتاد آقای باگینز فرصت و غریمت دونست و گذاشت و رفت از همون اولم که اومد به هیچی جز تخت و خونه گرم و نرمش فکر نمیکرد دیگه نباید منتظر حویت باشی. خیلی وقته که رفته نه نرفته اون هنوز اینجاست بیل با باکینز هیچ وقت تو زندگی دیدن کسی اینقدر خوشحال نشده بودم بیل با دیگه بیخیله واقعا چطور تونستی این کار بکنی که از دست گوبلی فرار کنی اهمیتی داره مهم اینه که برگشته بالا مهمه اما من میخواام بدونم چیکار کردی میدونم منو قبول نداری میدونم که هیچ وقتم نداشتی هر تو خیلی وقت به برگشتم فکر میکنم. دلم برای کتاب تنگ شده برای صندلیم برای باخچم خوب من به اونجا تعلق دارم. اونجا خونه منه. و منم برای همین برگشتم اینجا. چون شما هنوز به خونتون نرسیدین. خونتون ازتون گرفتم. و من کمکتون میکنم که پسش بگیرید. شون را نکنید، اونا رو چیچ پا نشون کنید. امنا! کار من درماد. بر این سمت دراختا، فرار کنی. آندری! ری میکنی بوی ترسو یادم پدرتم همین بو رو میداد بوی مرگ تورین پسر ترین این امکان نداره اون Oh le choô me Mariasz Kushina! خوبه بیل با همینجاست ظالم و سرحال تو چی کار کردی؟ از نگو به کشتم بدی نگفتم حسامون درد سر میشه؟ این جا دفعه نمیاره نگفتم این جایی بین ما نداره باید بگم برای اولین بار تو اون را اشتباه کردم نه نه راستش من خودم به خودم شک دارم. من ای قهرمانم نه هیجانجو. حتی دوستم نیستم. ببینم ششام درست میبینم؟ ربود، گوهران ها آخرین کلام روی دورف ها در سرزمین میانه. پرنده ها دارن به سمت کوه برمیگردم آینه عزیز آن یه حد حد بود این همون نشونه که میخوشتیم یه نشونه خوب حق با توه وکنم دیگه سختی ها رو پشت سر گذاشتیم